اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آمین به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ها میم من این کتابی است که از سوی خداوند رحمان الرحیم نازل شده است کتاب فصلت لقوم کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده در حالی که فسیح و گویاست برای جمعیتی که آگاهند نشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا قرآنی که بشارت دهنده و بین دهنده است ولی بیشتر آنان روی گردان شدند از این رو چیزی نمی شنبند. وقالوا قلوبنا في اكن مما تدعون اليه وفي آذاننا, وقر وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل, فاعمل إننا عاملون <تصفيق> قلب‌های ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می‌کنی در پوشش‌هایی قرار گرفته و در گوش‌های ما سنگینی نیست و میان ما و تو هجابی وجود دارد پس تو به دنبال عمل خود باش ما هم برای خود عمل می‌کنیم انما <تصفيق> یوحا ایلی انما ایله کم واقد فاستقیمو فاستقیمو ایلیه و استغفروه و ویل بگو من فقط انسانی مثل شما هستم این حقیقت بر من وحی می شود که معبود شما معبودی یگانه است پس تمام توجه خیش را به او کنید و از وی آمرزش تلبید وای بر مشرکان لا و هم هم همانها که زکات را نمیپردازند و آخرت را منکرند این الذین آمنوا و الصالحات لهم اجر غیر ممنون اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند پاداشی دائمی دارند قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و له اندادا ذالک رب العالمین بگو آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار دهید او پروردگار جهانیان است و جعل فيها رواسی من فوقها و بارک فيها و قدر فيها و قدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين, سواء للسائلين او در زمین کوهای استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی آن را مقدر فرمود اینها همه در چهار روز بود درست به اندازه نیاز تقاضاکنندگان عم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود به آن و به زمین دستور داد به وجود آید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه آنها گفتند ما از روی طاعت می آئیم فقضاهن سماوات فی یومین و أوحا. و اوحى كل سماء امرها وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحظا ذلك تقدیر العزيز العليم در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید و در هر آسمانی کار آن آسمان را به و مقرر فرمود و آسمان پایین را با چراغهایی ستارگان زینت بخشیدیم و با شهابها از رخمه شیاطین حفظ کردیم این است تقدیر خداوند توانا و دانا و این اعرضو فقل انذرتکن صاعقتا مثل صاعقت عادی و ثمود اگر آنها رویگردان شوند بگو من شما را از صاعقه ای همانند صاعقه عاد و ثمود میترسانم این جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا, تعبدوا الا الله قالوا لم شاء ربنا بما به كافرون آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر به سراغشان آمدند که جز خدا را نپرستید آنها گفتند اگر پروردگار ما میخواست فرشتگانی نازل می کرد از این رو ما به آنکه شما مبعوث به آن هستید کافرین لأن معاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا, وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذی خلقهم هو أشد منهم قوة. و اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا نمیدانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنها قویتر است؟ و به خاطر این پندار پیوسته آیات ما را انکار می کردند فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام لحسات لِنُذِيقَهُمْ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الْآخِرَةِ أخزى وهم لا ينصرون سرانجام تند بادي شديد و وسرد و سخت در روزهایی شوم و پرقبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خار کننده تر است و یاری نمی شوند و اما ثمود فهدیناهم فاخذتهم فَأَخَذَتُمْ صَاعِقَتُ العذاب الهون بما كانوا يَكْسِبُونَ اما سمود را هدایت کردیم ولی آنها نابینایی را بر هدایت ترجیح دادند به همین جهت سائقه آن عذاب خار کننده به خاطر اعمالی که انجام میدادند آنها را فرو گرفت و, آمنوا و, يتقون. و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند نجات بخشیدیم و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ میبرند و صفوف پیشین را نگه میدارند تا صفهای بعد به آنها ملحق شوند. اذا ما جاءوا و شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا بما كانوا يعملون وقتی به آن میرسند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه می‌کردند، گواهی می‌دهند. و قالوا لجنودیم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإلي ترجعون. آنها به پوستهای تنشان می‌گویند چرا بر ضد ما گواهی دادید آنها جواب می‌دهند همان خدایی که هر موجودی را به نطق درآورده ما را گویا ساخته و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشتتان به سوی اوست وَلَا لا شما اگر گناهانتان ر مخفی می کردید نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشم‌ها و پوست‌های تنتان بیم داشتید بلکه شما گمان می‌کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می‌دهید نمی‌داند وذالکوم ظننکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم فاصبحت من الخاسرين اری این گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاکت شما گردید و سرانجام از زیانکاران شدید فاین یصبروا فینلهم مثوا لهم و این فما هم من المعتبین اگر صبر کنند یا نکنند به هر حال دوزخ جایگاه آنهاست و اگر تقاضای عفو کنند مورد عفو قرار نمیگیرند. وَقَيَّضْنَا له لَهُمْ طُرَنَاءَ فزَيَّنُولَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّ لَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ما برای آنها همنشینانی زشت سیرت قرار دادیم که زشتی ها را از پیش رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند و فرمان الهی در باره آنان تحقق یافت و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و اینس که قبل از آنها بودند گرفتار شدند آنها مسلما زیانکار بودند وقال الذين كفروا لا لهذا القرآن والغم فيه لعلكم تغلبون كافران گفتند گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید شاید پیروز شوید لنذيقن الذین كفروا عذابا شدیدا ولنجزيَنهم ولا لنجزین لهم اسوأ الذی كانوا عملون به یقین به کافران عذاب شدیدی میچشانیم و آنها را به بدترین اعمالی که انجام میدادند دادند کیفر می دهیم جزاء اعداء الله مارو لهم في ادار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون این آتش کیفر دشمنان خداست سرای جاویدشان در آن خواهد بود کیفریست است به خاطر اینکه آیات ما را انکار میکردند وقال الذین کفروا ربنا ارنال لذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما, نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین کافران گفتند پروردگارا آنهایی که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما تا زیر پای خود نهیم تا از پست ترین مردم باشند این الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتنزل عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ و ابشرو بالجندتی لتی توعدون به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند فرشتگان بر آنان نازل میشوند که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها فیها ما تدعون ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود من غفور اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال وقال انني من المسلمين چه کسی خوش تر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می و عمل صالح انجام میدهد و میگوید من از مسلمانانم ولا تستوي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدِفَعْ بِالَّذِي هي اَحْسَنُ فإذا الذي بينك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ الذي الَّذِي بَيْنَكَ هرگز نیکی و بدی یکسان نیست بدی را با نیکی دفت کن ناغاه خواهیدید همان کس که میان تو و او دشمنیست گویی دوستی گرم و سعی نیست. ما یلقاها ایلا الذين صبروا و ما یلقاها و ما یلقاها عظیم. اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمیرسند و جز کسانی که بحره عظیمی از ایمان و تقوا دارند به آن نائل نمی‌گردند و این ما ینذرک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العلیم هرگاه وسوسه‌هایی از شیطان متوجه تو گردد از خدا پناه بخواه که او شنونده و داناست و من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم این و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه هست برای خورشید و ماه سچده نکنید برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید اگر میخواهید او را بپرستید وع ازك بررو ف الذي عم دابیك وسبحون له بالليلی و غری وهم وهمم لاسمو و اگر از ادت پروردگار تکبر کنند کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تصبیح میگویند و خسته نمیشوند من آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزل عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير و از آیات او این است که زمین را خشک و بی جان می بینی. اما هنگامی که آب باران بران می فرستیم به جنبش در می آید و نمو می کند همان کس که آن را زنده کرد مردگان را نیز زنده می کند. او بر هر چیز تواناست إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا، أَفَمَن يُلْقَى فِينَار خير أم مَن يَأْتِي خير أم مَن يَأْتِي يوم القيامة اعملوا مَا شِئْتُمْ کسانی که آیات ما را تحریف می کنند بر ما پوشیده نخواهند بود آیا کسی که در آتش افکنده می شود بهتر است یا کسی که در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه محشر می آید؟ هر کاری می خواهید بکنید او به آنچه انجام می دهید بیناست. اینالذین کفرو بالذکر لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. کسانی که به این ذکر قرآن، هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهند ماند. و این کتابیست قطعاً. شکست نپذیر آیا الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمیآید چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم به ناروا بناروا درباره تو میگویند همان است که درباره پیامبران قبل از تو نیز گفته شده پروردگار تو دارای مغفرت و دارای مجازات دردناکیست است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 اولئی مکان هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می دادیم حسمن می گفتند چرا آیاتش روشن نیست؟ قرآن عجمی از پیغمبری عربی؟ بگو این کتاب برای کسانی که ایمان آورده هدایت و درمان است ولی کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگی نیست و گویی نابینا هستند و آن را نمی بینند آنها همچون کسانی هستند که گویی از راه دور صدا زده می شوند و لقد آتینا موسا الكتاب فا اختلف فیه و لولا کلمت سبقت من ربك لقضي بينهم و انهم لفي شك منهم ریبت. ما به موسا کتاب آسمانی دادیم سپس در آن اختلاف شد و اگر فرمانی از ناحیه پروردگارت در این بار صادر نشده بود که باید به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود در میان آنها داوری میشد و به کیفر می رسیدند ولی آنها هنوز درباره آن شکی تهمتانگیز دارند عمل صالحا و من أساء و من کسی صالحا ومن وما ربك بظلام که عمل صالحی انجام دهد سودش برای خود اوست و هر کس بدی کند به خیشتن بدی کرده است و پربرگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند ایلیه یرد علم الساعة و ما تخرج من ثمرات من اکمامها و ما تحمل من انثا و ما تحمل من انثا و لا الا بعلمه و یوم ینادیهم این شرکائی قالو قالو آزننا کما منا من شهید علم به قیامت و لحظه وقوع آن تنها به خدا باز می کردد. هیچ میوئی از قلاف خود خارج نمی و هیچ زنی باردار نمی و وضع حمل نمی کند مگر به علم او و آن روز که آنها را ندا میدهد و میگویند کجایند شریکانی که برای من میپنداشتید میگویند پروردگارا ما عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم و ضل عنهم ما من ما لهم من و همه معبدانی را که قبلا میخواندند مهو و گم میشوند و میدانند هیچ گریزگاهی گاهی ندارند. لا یسم الإنسان من دعا الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط انسان هرگز از تقاضای نیکی خسته نمی شود و هرگاه شر و بدی به او رسد بسیار معیوس و نومید می گردد لَإِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولًا لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئروجعت إلى ربي ولئروجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلنلبي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقن و نوقان نگوم مینادین هرگاه: او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم میگوید. این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمیکنم قیامت برپا شود. و به فرض که قیامتی باشد هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم، برای من نزد او پاداش های نیک است ما کافران را از اعمالی که انجام دادهاند به زودی آگاه خواهیم کرده و از عذاب شدید به آنها می چشانیم و اینا علی الانسان اعرض و بجانبه و وسم و شود و این و هرگاه به انسان قافل و بیخبر نعمت دهیم روی میگرداند و با حال تکبر از حق دور می‌شود. ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای فراوان و مستمر برای برطرف شدن آن دارد. قل ارأيتم این کان من عند الله ثم کفرتم بهی به من اضل من, من هو فی شقاق بعید بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید چه کسی گمراه تر خواهد بود؟ از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد. سنوریم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أن الحق أو لم يكف بربك أن على كل شيء شهید بزودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟ لَا اِنَّهُمْ في مِرْيَتٍ من لقاء ربهم الا آگاه باشید که آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند و آگاه باشید که خداوند به همه چیز احاطه دارد